خیلی آقا دیدم که برای آموزش این که اصلا چطور باید ارتباط برقرار کنید و راه درست چیه حالا تو هر موضوعی باید اون غلط‌ها رو نشون داد که آدما دیگه تکرارش نکنن آدم‌ها نسبت بهش هوشیارشن و دیگه اون مسیر غلطه رو نرن حالا اگه هنوز شروع نکردن به مال مسیر درست حد دل چیکار نباید بکنن و من میخوام درباره ارتباط هیپنوتیزمین رو به شما بگم که یه بار برای همیشه شما که دوست روی دیگران اثر بذارید روی خودتون اثر بذارید یک بار برای همیشه بدین متحجه شید که چه نوع اثرگذاری جواب نمیده مثال واضح شما بالسر یه نفر با یه نفر میخواید حرف بزنید مذاکره کنید حالا کاری، عشقی هر جوری بعد شروع کنید به تحقیر کردنش با سر و صدا خیلی اینجوری شروع میکنن که نه من اون موقع به تو گفته بودم که این نمیشه تو اصلا هیچی متوجه نمیشی تو تازه این خوبسه و این یه دونه مثال زدم که خودتون دیگه انواع دیگه مثال که تو زندگیتون وجود داشته رو به یاد بیارید دوستان هیچ مذاکرهای به این شکل به نفع اون هدفی که تو زنه دارید ختم نخواهد شد یعنی به نتیجه نمیرسه فکر نکنید شما میتونید با داد و بیداد کردن و تخریب طرف مقابل و صدای بلند و اینها میتونید روی کسی اثر بذارید یعنی اصلا غیر ممکنه یه مذاکره که نمیدن توال های مثلا اخبار رو دیدید یا نه دو نفر صداشون رو بردن بالا با یه لحن عجیب غریبی اصلا یا نه آقای فلان شما اصلا متوجه نیستی که وضعیت کشور ما چطور هست واقعا یک بار شده ببینید چنین مناظره هایی به این برسه که اصلا نهایتا یه نفر بگه آها بله راست میگفتید من اصلا دقت نداشتم به اون موضوع و من میپذیرم حرف شما رو نمیشه چون که دو نفر دارن بهم حمله حمله میکنن دارن با انرژی با صدای بالا با نه هوشیاری به جون هم افتادن اینجوری چون نمی‌تونید اثرگذاری هیپنوتیزمی داشته باشید و, و صحبت من دقیقا همین هست یک بار برای همیشه تو زندگیتون نگاه کنید که نوع رفتارهای شما نوع هایی که نشون میدید مثلا ممکنه بخواید باعث بشید یه نفر اصلا رو ترک کنه باعث بشید یه نفر یه راه تشقی که به نفش نیستو کنار بذاره مثلا باید بدونید که چطور جواب نمیده و دیگه حداقل اون روش‌ها رو تکرار نکنید، اثرگذاری هیبنوتیزمی یعنی اثرگذاری به شکلی که روش های رایج و اشتباه جامعه رو دربار نگیره، خیلی تخریب میکنند، خیلی ها اصلا تین حرف زدن، تونه مناسبی ندارند، داد میزنند، لحن بدی دارند. همه اینها رو بهش آگاه شید و حتما اصلاحاتی رو در اون ایجاد کنید. اون موقع خواهید دید که کم کم میتونید روش های خوب و صحیحی که یاد میگیرید رو هم وارد عمل کنید و نجاگیری بسیار بهتری داشته باشید